جن خودخواه نوشته یا ریچارد داکینز فصل چهارم ماشین جن ماشین های بقا در ابتدا ظرف منفعلی برای ژن ها بودن که کمی بیش از یک دیواره آنها را از جنگ افزارهای رقیبان و آسیبهای اتفاق بمبارانهای ملکولی حفظ می کردن. در آن ایام نخستین آنها از ملکولهای آلی تغذیه می کردن که در سوپ اولی فراوان بود وقتی غذاهای عالی درون سوب که با تابش خورشید و تیه قرنها به تدریج ساخته شده بودند ته کشید زندگی راحت آنها به پایان رسید یک شاخه اصلی از ماشینهای بقا که امروز گیاه نامیده می شوند، شروع کردن به اینکه خودشان مستقیما با استفاده از خورشید از ملکول ساده تر ملکولهای پیچیده تری بسازند و با سرعت زیاد تری همان نقشی را اجرا کنند که خورشید در فرایند ترکیبان سوپ اولیه داشت. شاخه دیگر که حالا حیوانات نامیده می شوند فهمیدند چگونه از حاصل زحمت گیاهان به صورت گیاه یا به صورت حیوانات دیگر استفاده کنند. این هر دو دسته اصلی ماشین های از راه های هرچه ابتکاری تر کارآمدی خود را در روش های مختلف گذران زندگی زیاد کردند و مدام شیوه های تازه ای برای زندگی پیدا شد شاخه آن شاخهها ها و شاخه های شاخه های آنها نیز پیدا شد هر کدام در یک روش خاص امرار معاش مهارت میافت در دریا، روی زمین، در هوا، زیر زمین، بالای درخت و درون بدن موجودات زنده دیگر این شاخه شاخه شدن موجب چنان تنوعی در حیوانات و گیاهان شد که امروز ما از آن در شگفتیم هم حیوانات و هم گیاهان به شکل بدنهای پرسلولی در آمدند که نسخه کاملی بود از همه ژنهایی که در تک تک سلولها پراکنده بود ما نمیدانیم در چه زمانی و چرا و چند بار جداگانه چنین اتفاقی رخ داده است بعضی‌ها با استفاده از استعاره بدن را یک پرگنه سلولها در نظر می‌گیرند من ترجیح می‌دهم بدن را پرگنه ژنها بدانم و سلول را یک واحد سودمند و راحت برای صنایع شیمیایی ژنها محسوب کنم. گرچه ممکن است بدن پرگنه جنها باشد اما بیتردید از نظر رفتار وردیت خاص خود را دارد. یک حیوان به صورتی که کل هماهنگ حرکت می کنند. به صورت یک واحد، برداشت درونی من از آن یک واحد است نه از پرگنه و این عجیب نیست در انتخاب به ژنهایی که با بقیه همکاری کنند برتری داده می شود. در رقابت شدیدی بر سر منابع کمیاب، در تلاش بی وقفه ای که برای خوردن ماشین های بقای دیگر و گریز از خورده شدن وجود دارد، باید درون آن بدن مشترک به جای آشوب و هرج و مرج هماهنگی اساسی از ارزش خاصی برخوردار باشد. امروز تکامل توام و متقابل جنها به قدری پیش رفته است که ماهیت همبودی یک ماشین بقا عملم غیر قابل تشخیص است. در واقع بسیاری از زیست شناسان آن را تشخیص نمی و با نظر من مخالفت می کنن. خوشبختانه در مورد بقیه این کتاب از بابت چیزی که ژورنالیست ها اعتبار می نامند، بیشتر اختلاف نظر در سطح مجامع علمی است. درست همانطور که وقتی در مورد طرز کار یک اتومبیل حرف میزنیم. صحبت از کوانتوم و ذرات بنیادی موردی ندارد. وقتی از رفتار ماشین های بقا هم حرف می‌زنیم، اغلب نابجا و خسته کنند است که پای ژن را به میان بکشیم. عملا راحتر این است که بدن یک فرد را به صورت تقریبی عاملی در نظر بگیریم که میکوشد تعداد همه ی را در نسل آینده افزایش دهد. من از این زبان راحت استفاده می کنم. رفتار ایسارگرانه و رفتار خودخواهانه به معنی رفتاری است که از جانب بدن یک حیوان متوجه بدن حیوان دیگر می شود مگر اینکه به صورت دیگری توضیح داده شود این فصل درباره رفتار است فوتوفن سریع حرکت کردن چیزی که شاخه حیوانات ماشین بقا زیاد از آن استفاده می کنند حیوان ها وسیله نقلیه پرتحرک و پرزوری برای جن و به عبارتی ماشین جن شده اند ویژگی رفتار با مفهومی که زیزچناس ها آن را به کار میبرند سریع بودن آن است. گیاهان هم حرکت دارند ولی خیلی کند. گیاهان رونده در فیلمی که خیلی سریع به چرخد مانند حیوانات پرتحرکند. اما حرکت بیشتر گیاهان در واقع رشد و فقط روبه جلو است اما حیوانات به شیوهی از حرکت رسیدم که صدها یا هزاران بار سریعتر تر است. بلاوه حرکت آنها جهت برگشت هم دارد. و می تواند بارها تکرار شود ابزاری که حیوانات برای جابجایی سریع ساختند ماهیچه است ماهیچه موتوری است که مثل ماشین بخار و موتور درونسوز از انرژی ذخیره شده در سوخت شیمیایی برای ایجاد حرکت مکانیکی استفاده می‌کند تفاوت در این است که نیروی مکانیکی ماهیچه با کشیدگی آن تولید می‌شود در حالی که در موتورهای درونسوز یا ماشین بخار به صورت فشار گاز است اما از این نظر که ماحیچه نیروی خود را روی رشتهها و احروم های لولا شده نشان میدهد مانند موتور است در ما اهروم همان استخوان است رشته های ربات و لولاها مفصلند در مورد چگونگی سازوکار ملکول ها اطلاعات زیادی در دسترس است اما این مسئله که نظم زمانی انقباز ماهیچه چگونه تعیین می‌شود، برای من جالبتر است آیا تا کنون به یک ماشین تا حدی پیچیده به دقت نگاه کرده اید؟ مثلا به چرخ خیاطی، ماشین بافندگی یا پارچه بافی، دستگاه بطری پر خودکار یا ماشین بسته بندی علف خشک؟ نیروی محرک از جایی تأمین می شود مثلا از موتور برق یا تراکتور. اما خیلی عجیبتر از آن چگونگی زمان مراحل اجرای کار است. صبحابها به ترتیب مناسب باز و بسته می شوند؟ چنگک های فولادی بندی را دور بسته اولوف گره می زنند بعد درست در لحظه مناسب کاردی بیرون میآید و بند اضافی را میبرد. در بسیاری از ماشین های ساخت بشر زمان بندی کار توسط یک اختراع شگفتاور یعنی بادامک صورت می گیرند. این وسیله ساده حرکت دورانی را به وسیله بادامک یا چرخی که شکل خاصی دارد به الگوی عملیات زمانبندی شده تبدیل می کند. اصل کار در جعبه موسیقی هم همین است. در دستگاه دیگر مانند ارگ بخار و پیانو از نوار کاغذی یا کاغذی که رویشان سراخه منظمی ایجاد شده استفاده می شود. به تدریج به جای این تایمرهای های ساده مکانیکی، از نوع برقی آن استفاده می کنند. کامپیوتر دیژیتالی نمونه ای از وسایل بزرگ الکترونیکی همه کار است که می توان آن را در ایجاد الگوهای پیچیده زمانبندی حرکت بکار بود. جزء مهم یک دستگاه الکترونیکی جدید مثل کامپیوتر نیمه هادی آن است که صورت آشنای آن ترانزیستور است. به نظر می رسد ماشین های بقا از بادامک و کارت های شده جلوترند. دستگاهی که برای تعیین زمانمندی حرکتشان به کار میبرند با کامپیوتر خیلی چیزهای مشترک دارد ولی از نظر عملیات اصلی با آن بسیار تفاوت دارد جزء اصلی کامپیوترهای زیستی یعنی سلول های عصبی یا نرون ها از نظر کارکرد داخلی هیچ شباهتی به ترانزیستورها ندارد البته رمزی که ها با آن ارتباط برقرار میکنند تا حدی شبیه رمز پالسی کامپیوترهای دیجیتالی است اما یک نورون منفرد از نظر پردازش اطلاعات واحد بسیار پیچیده‌تری از ترانزیستور است به جایی فقط پیوند با اجزای دیگر یک نورون ممکن است ده ها هزار پیوند داشته باشد نورون از ترانزیستور کندتر است اما ترانزیستور از نظر ریز بودن خیلی پیشرفت کرده و این روند در دو دهه گذشته بر صنایع الکترونیک حاکم شده است. البته اینکه حدود ده هزار میلیون نورون در مغز بشر وجود دارد در حالی که فقط چند صد ترانزیستور را می شود درون یک جمجمه جا داد. گیاهان به نورون نیاز ندارند زیرا بدون این که جابجا شوند غذای خود را به دست می آورند. لیکن تقریبا در تمام حیوانات نورون یافت می شود. احتمالاً نورون در ابتدای تکامل حیوانات کشف شده و به همه گروه ها به ارث رسیده است. این احتمال هم هست که چندین بار جداگانه کشف شده باشد. نورون ها در اصل سلول و مثل سلول های دیگر دارای هسته و کروموزوم هستند. اما از دیواره سلول آنها چیزهای دراز و باریک سیم مانندی بیرون زده است. اغلب یک سیم درازتر از بقیه دارند که آکسون نامیده می شود. گرچه عرض آکسون میکروسکوپی است ولی طول آن ممکن است به چند پا برسد. آکسون های منفردی وجود دارند که در تمام طول گردن زرافه امتداد دارند. آکسون ها اغلب به صورت رشده هستند که با همدیگر یک کابل زخیم به هم پیچیده به نام عصب را تشکیل می اینها پیام را از یک جای بدن به جای دیگر منتقل می کنند. تقریبا مثل کاب تلفن تلفون بین شهری. دیگر آکسان های دارند و محدودند به تجمع انبوه بافت‌های های عصبی که گره عصبی یا وقتی خیلی بزرگتر باشد مغز نامیده می شود. کارکرد مغز را می توان با کامپیوتر قیاس کرد. از این نظر قابل قیاس است که این هر دو نوع دستگاه پس از تحلیل الگوهای پیچیده دروندادها و پس از مراجعه به اطلاعات ذخیره شده الگوهای پیچیده برونداد را تولید می کنند مغز از طریق کنترل به هماهنگ کردن انقباز ماهیچه عملا در موفقیت ماشین بقا سهم دارد برای این کار به کابلهایی نیاز دارد که به ماهیچه وصل باشد و آنها را اعصاب حرکتی مینامند ولی این کار فقط در صورتی واقعا منجر به حفظ ژن می شود که زمانبندی انقباض ماهیچه ها در ارتباط با زمانبندی رویدادهای خارج باشد مهم است که های آروار وقتی فقط منقبض شود که چیز با ارزشی برای گاز زدن آن باشد و انقباض های پا وقتی به صورت دویدن درآید که برای دویدن به سمت چیزی با گریز از آن دلیلی وجود داشته باشد به این دلیل انتخاب طبیعی حیواناتی را ترجیح داده است که به اندامهایی یعنی به ابزارهایی مجهز باشند که الگوی رویدادهای فیزیکی جهان خارج را به زبان رمز زربان نورونها ترجمه کنند مغز به کابل کابلهایی که به نام اعصاب با اعضای حسی چشم گوش های چشایی و غیره در ارتباط است کارکرد سامانهٔ حسی بسیار حیرت آوری دارد زیرا آنها خیلی پیش از گرانترین و بهترین دستگاه های ساخته می توانند به الگوهای شناخت دست یابند. اگر غیر از این بود، دستگاه های تشخیص گفتار یا دستگاه هایی که دست ها را میخانند جای همه ماشین ها را میگرفت و آنها را مازاد اعلام میکرد. هنوز دهه های زیادی به انسان های نیاز داریم. احتمالا در ایامی اعضای حسی کم و بیش به طور میکردند. در واقع شقایق های دریایی امروز تقریبا همین وضعیت را دارند. زیرا این روش به درد زندگیشان می خورد. اما برای دستیافتن به رابطه های تر و غیر مستقیم تر بین زمانبندی حوادث جهان خارج و انقباز ماهیچه به نوعی مخص در نقش واسطه نیاز بود. یک پیشرفت چشمگیر اختراع حافظه بود. با این وسیله نه فقط رویدادهای گذشته بسیار نزدیک بلکه رویدادهای گذشته های دور هم میتوانستن روی زمانبدی انقباز مایجا ما تأثیر بگذارند حافظه بخش مهمی از یک کامپیوتر دیجیتالی است حافظه کامپیوتر از حافظه انسان قابل اعتمادتر است اما گنجایش کمتری دارد و از نظر ترتیب بندی بازیابی اطلاعات بسیار عقبتر از آن است یکی از خیره کننده ترین ویژگی های رفتار ماشین بقا هدفمندی آشکار آن است منظور فقط این نیست که برای کمک به بقای ژن جانداران کاملا حساب شده تنظیم شده است البته این حسن بزرگی است گرچه البته چنین است منظور این است که شباهت نزدیکی به رفتار هدفمند انسان دارد وقتی ما حیوانی را در جستجوی خوراک یا در جستجوی جفت یا بچه گم شدهاش مشاهده می کنیم به اختیار به یاد یک احساس درونی میفتیم که خودمان ضمن گشتن دنبال چیزی داریم این شاید شامل میل به چیزی تصویر ذهنی هدف یا تجسم مقصد باشد تک, تک ما از روی شواهدی که از بررسی درون خود داریم میدانیم دست کمی از ماشین های بقای امروزی هدفمند من بودن باعث ایجاد ویژگیش شده است که نامش را آگاهی گذاشته ایم. من آن اندازه اهل فلسفه نیستم که بتوانم معنی آن را شرح دهم. بخش در هدفی که از بحث حاضر داریم، مسئله مهمی نیست زیرا بحث درباره ماشینهایی که ظاهرا رفتارشان انگیزه ای دارد ساده است و میتوان در آنها این سوال را به بحث گذاشت که آیا در واقع آگاه هستند یا نه. چنین ماشینهایی در اصل خیلی ساده‌اند و اصل رفتار هدفمند ناآگاه یکی از اصول پیش پا افتاده در علم مهندسی است. نمونه کلاسیکا آن رگلاتور ماشین بخار است اصل بنیادینی که در آن دخیل است بازخورد منفی نام گرفته است و صورتهای مختلفی از آن وجود دارد در کل این اتفاق صورت می گیرد که ماشین هدفمند یعنی دستگاه یا آن چیزی که رفتارش توریست که به نظر می رسد هدفی دارد به یک نوع وسیله اندازگیری مجهز است که اختلاف بین وضعیت موجود چیزی و وضعیت مطلوب آن چیز را اندازه می گیرد. این وسیله طوری ساخته شده است که هرچه میزان این اختلاف بیشتر باشد، آن ماشین با شدت بیشتر کار میکند. کند. به این ترتیب دستگاه به طور خودکار تمایل دارد که اختلاف مذکور را کاهش دهد. به این دلیل بازخورده منفی نام گرفته. و در واقع اگر در وضعیت مطلوب قرار گیرد ممکن است به حالت آرامش برسد. رگلاتور وات از یک جفت توپ درست شده که با موتور بخار به گردش در می آیند. هر توپ در انتهای یک بازوی لولا شده قرار دارد. هرچه توبها تونتر به شرخند نیروی گریزه از مرکز بیشتری بازوی آنها را به سمت افقی شدن می برد که نیروی جاذبه زمین در برابرش مقاومت می کند. این بازوها به رگلاتور بخاری وست است که به موتور نیرو می دهد به این شکل که هر وقت بازوها به صورت افقی نزدیک می شوند، دریچه بخار کم کم بسته می شود. بنابراین اگر موتور خیلی سریع حرکت کند، بخشی از بخار مسدود می شود و از سرعت موتور کاسته می شود. اگر موتور خیلی آهسته باشد، رگلاتور به طور خودکار بخار بیشتری به آن می دهد و دوباره سرعت می گیرد. این دستگاه های هدفمند اغلب به خاطر نرسیدن به وضعیت مطلوب و وقفه زمانی در نوسانند و اینکه چه وسائل جانبی در آن کار بگذارند که نوسان کمتر شود بخشی از هنر مهندسی است وضعیت مطلوب برای رگلاتور داشتن سرعت ثابت است ولی است که دستگاه آگاهانه چنین چیزی را طلب نمی‌کند منظور از هدف در مورد دستگاه وضعیتی است که دستگاه مایل است به آن برگردد در ماشین هدفمند امروزی، با به کار گرفتن شکل بست یافته اصول بنیادینی مثل بازخورد منفی، رفتاری شبیه به رفتار بسیار پیچیدهتر موجود زنده پیدا می شود. برای مثال، موشک های هدایت شونده ظاهرا به دنبال هدف می و وقتی آن را در محدوده ای شناسایی کردند، با در نظر گرفتن گردش و چرخش های گمراه کنندش آن را دنبال و حتی گاهی موقعیت آن را پیشبینی یا گمان زنی می کنند. شرط جزیات این که این امر چگونه صورت می گیرد در اینجا لزومی ندارد. در کل شامل انواع مختلف بازخورد منفی پیش و اصول دیگری می شود که مهندسان ها خوب از آن سر در میآورند و حالا کاربرد وسیع آنها در مدلهای زنده شناخته شده است. گرچه هر آدم معمولی با تماشای رفتار به ظاهر عمدی و هدفمند آن به سختی می تواند باور کند که موشک تحت کنترل مستقیم یک انسان خلبان نباشد. نباید چیزی تقریبا نزدیک به آگاهی را مسلم فرض کنیم این یک تصویر غلط ولی رایج است که چون دستگاهی مثل موشک هدایت شونده را در اصل انسان آگاه ساخته است پس باید حتما تحت کنترل مستقیم انسان آگاه عمل کند نوع دیگر از تصور غلط این است که کامپیوترها واقعا شطرنج بازی نمیکنند چون فقط کاری را که یک انسان و اپراتور با آنها میگوید انجام میدهند مهم این است که متوجه باشیم چرا چنین تصوری اشتباه است چون در برداشت ما از این مفهوم که ژنها رفتار را کنترل میکنند نقش دارد شطرنج بازی کردن کامپیوتر مورد خوبی برای روشن کردن مطلب است آنها به طور خلاصه شهر دهم. گرچه هنوز بازی کامپیوتر به خوبی استادان بزرگ شطرنج نیست اما به حد یک آماتور خوب رسیده است به صورت دقیق تر باید گفت برنامه ها به سطح یک آماتور خوب رسیدن چون برای یک برنامه بازی شطرنج مهم نیست که کامپیوترش از نظر فیزیکی چه باشد تا خوب عمل کند. حالا باید دید در اینجا نقش انسان برنامه نویس چیست؟ اولا یقینا اینطور نیست که مثل یک عروسک گردان که مدام بند عروسک را می کشد لحظه به لحظه در کار کامپیوتر دخالت کند. این کار تقلب محسوب می شود. او برنامه را می نویسد، آن را به کامپیوتر می دهد و بقیه یه کار با خود کامپیوتر است. از دخالت انسان دیگر خبری نیست مگر زمانی که حریف کامپیوتر حرکات خود را بازی کند. آیا اینطور است که برنامه نویس همه ی ممکن شطرنج را در نظر می گیرد و فهرستی طولانی از همه حرکت‌های مناسب در اختیار کامپیوتر قرار می‌دهد و برای هر موقعیت خاص یک حرکت مناسب توصیه می کند؟ به یقین چنین نیست، زیرا تعداد وضعیت های ممکن در شطرنج به قدری زیاد است که قبل از به پایان رسیدن آن فهرست دنیا به آخر می رسد. به این دلیل کامپیوتر را نمی شود. طوری برنامه ریزی کرد که در سر خود همه ی حرکت های ممکن و پیامد آنها را بسنجد تا یک راهکار مناسب پیدا کند. تعداد راه های بازی در شطرنج بیش از تمام اتم‌های موجود در کهکشان ماست. خوب تا اینجا درباره مسئله ناقابل و بی جواب برنامه ریزی کامپیوتر برای شطرنج بود. در واقع ما بسیار مشکلی است و تعجب ندارد که هنوز بهترین برنامه ها به سطح استادان بزرگ شترنج نرسیده اند نقش برنامه عملاً عملا بیشتر شبیه پدری است که به فرزندش شطرنج یاد میدهد او به کامپیوتر حرکات اصلی را میگوید اما نه اینطور که برای هر نقطه شروع ممکن جداگانه توضیح دهد بلکه آنها را به صورت قواعدی مختصر و مفید بیان میکند مثلا؟ این طور خشک نمیگوید که فیل ضربدری حرکت میکند، بلکه چیزی معادل آن را به زبان ریاضی بیان میکند. کند. گرچه کمی خلاصه تر ولی چیزی مثل این مختصات جدید فیل را با افزودن مقدار ثابتی به مختصات قبلی آن به دست می آورند. گرچه لازم نیست آن مقدار ثابتی که به مختصات ایکس و ایگرگ قدیم افزوده میشود، از نظر علامت یکسان باشند. بعد ممکن است در برنامه، توصیه هایی قرار گیرد که به نوعی با زبان ریاضی یا منطقی نوشته شده و با استفاده از اصطلاحات زبان بشری معادل شاه را بی محافظ نگذار یا شگرتهای مفیدی مثل چنگال یعنی به خطر انداختن دو مهره با یک حرکت با مهره اسب باشد جزئیات آنها جالب توجه هست ولی ما را از مطلب اصلی دور می کند. نکته اصلی این است که عملا در هنگام بازی کامپیوتر را به حال خود با می می‌گذارد و از طرف صاحبش کمکی به او داده نمی‌شود تنها کاری که برنامه ریز می کند این است که پیشاپیش کامپیوتر را به بهترین شکل ممکن تنظیم کند که بین فهرست اطلاعات خاص و سرنخهایی که در مورد راهکارها و تکنیکهاست توازن مناسبی برقرار باشد جنها هم رفتار ماشین بقایشان را کنترل می کنند البته نه به صورت مستقیم که مثلا با انگشت بند عروسکار را بکشند بلکه به صورت غیر مستقیم مانند برنامه کامپیوتر تنها از پیشان را تنظیم می کنند بعد ماشین بقا خودش راه می و جنهای درون آن بدون دخالت در کارش آنجا می نشینند. چرا اینقدر جنها منفعل هستند؟ چرا انان را به دست نمیگیرند و بر لحظه لحظه کار نظارت نمی کنند؟ پاسخ این است که به خاطر مشکلات مربوط به وقت زمانی نمی توانند. این را با استفاده از قیاسی دیگر که از افسانه های علمی گرفته این بهتر می توان نشان داد. ای فور آندرومدا داستان مهیجی است. نوشته فرد هویل و جان الیوت و مثل همه افسانه های علمی خوب، نکات علمی جالبی در آن نهفته است. جالب این که هیچ اشاره آشکاری به مهمترین نکته نهفته در آن وجود ندارد. آن را به قدرت تخیل خاننده سپردهاند. امیدوارم مطرح شدن آن در اینجا اسباب دلخوری نویسندگانش را پراهم نکنند. تمدنی در فاصله 200 سال نوری در صورت فلکی امرعتل مسلسله زن پایی در زنجیر وجود دارد. ساکنان آنجا میخواهند فرهنگشان را به دنیاهای دوردست صادر کنند. بهترین راه برای این کار چیست؟ بحث سفر مستقیم را باید کنار گذاشت. سرعت نور به لحاظ نظری بر سرعت جابجایی شما از نقطه ای به نقطه ای دیگر در جهان محدودیتی را تحمیل می کند و شرط مکانیکی در عمل حد خیلی پایینتری را اعمال میکند. علاوه شاید همه دنیاها ارزش این سفر کردن را نداشته باشند از کجا باید دانست که در چه جهتی باید رفت رادیو دستگاه بهتری برای ارتباط با کیهان است زیرا اگر بتوانید علایمتان را به جای اینکه فقط در یک جهت باشد در همه جهات بفرستید می توانید به جهانهای های زیادی برسید که تعدادشان با مجزور فاصله ای که آن علایم می زیاد می امواج رادیو با سرعت نور حرکت میکنند یعنی دیوی سال طول میکشد که از امرأت المسلسله به زمین برسند مشکل این نوع فاصله در این است که آدم هرگز نمیتواند ای برقرار کند حتی اگر این واقعیت را ندیده بگیریم که هر دو پیام پشت سر هم از زمین از طرف افرادی است که دوازده نسل با هم فاصله دارند تلاش برای گفته در از چنین فاصلهای کاری عبس و بیسرانجام است این مشکل به‌زودی شدیدترین صورت خود را به ما نشان می‌دهد. چهار دقیقه طول می‌کشد که امواج رادیویی فاصله بین زمین و مریخ را طی کنند. بیشک، فضاپیماوندان باید عادت گفتن جمله‌های کوتاه و پشت سر هم را کنار بگذارند و مجبورند از تکگویی یا سخنرانی‌های طولانی که بیشتر شبیه نامه است تا گفتگو استفاده کنند. به عنوان مثالی دیگر راجر پین خاطرنشان کرده است که وضعیت صوتی دریا ویژگیهای خاصی دارد به این معنی که اگر بعضی نهنگها در عمق خاصی شنا کنند از جنبه نظری باید صدای آوازشان در سراسر جهان شنیده شود هنوز معلوم نیست که آیا آنها واقعا از فاصله های بسیار دور با هم ارتباط برقرار می کنند یا نه اگر اینطور باشد باید همان وضع فضانوردان روی مریخ را داشته باشند سرعت صوت در آب طوری است که تقریبا دو ساعت طول می کشد که آوازی از روی اقیانوس اطلس بگذرد و جوابش برگردد به نظر من این می‌تواند توضیحی برای این واقعیت باشد که بعضی نهنگ ها به مدت هشت دقیقه تک گفتاری را بیرون میدهند بعد دوباره از اولان را تکرار می کنند و چندین بار این کار را انجام می‌دهند و هر دور کامل حدودا هشت دقیقه طول می‌کشد. ساکنان امرت المسلسله در آن داستان هم همین کار را کردند چون موردی نداشت که منتظر جواب بمانند ی آنچه را که میخواستند بگویند در یک پیام بسیار مفصل جمع کردند و چند بار پشت سر هم و با فاصله زمانی چند ماه آن را در فضا پخش کردند با این حال پیام آنها با پیام نهنگ ها تفاوت داشت پیام آنها شامل دستورهای رمز گذاری شده برای ساخت و برنامه ریزی یک کامپیوتر بسیار بزرگ بود. البته آن دستورها اصلا به زبان بشری نبود. ولی میشد تک تک رمزها را توسط یک رمزشناس ماهر رمز گشایی کرد. مخصوصا وقتی قصد طراحان آن رمز این بود که راحتی شکسته شود. آن پیام که توسط تلسکوپ رادیویی جادرال بنگ دریافت شده بود، بالاخره رمزگشایی شد. کامپیوتر را ساختند و برنامهش را افتاد. حاصل کار برای انسان تقریبا فاجعه بار بود، زیرا نیت امرأت المسلسله ها در کل ایسار گرانه نبود و کامپیوتر در جهت تسلط بر جهان پیش می‌رفت. تا بالاخره قهرمان داستان با یک تبر به ماجرا خاتمه داد. از نظر ما سوال جالبی هست که از چه نظر میتوان گفت امرات المسلسله ها قصد دخالت در ماجراهای روی زمین را داشتند آنها هیچ نظارت لحظه به لحظه روی کارکرد آن کامپیوتر نداشتند چون در واقع هیچ راه ممکنی برای مطلع شدن از اینکه اصلا کامپیوتر ساخته شده یا نه نداشتند به این دلیل که دویست سال طول میکشید تا این اطلاع به آنها برسد حتی برای گرفتن راهکارهای کلی دسترسی به سازندگان ها ممکن نبود. همه دستورالعملها ها باید از اول در آن کار گذاشته می شد. به این دلیل که فاصله و مانه دیویز سالهی سر راه بود که گریزی از آن نبود. در اصل باید خیلی شویه کامپیوتر شترنج باز برنامه ریزی می اما با این و گنجایش بیشتر برای دریافت اطلاعات محلی، چون آن برنامه باید طوری در میشد می شد که نه فقط بر روی زمین، بلکه در هر جهانی که فناوری پیشرفت داشته به کار می افتاد در هر جهان، از مجموعه جهانهایی که رات ممسزله ها راهی برای دست یافتن به جزئیات وضعیت آنها در اختیار نداشتند. درست همونطور که امراتول ممسصله ها برای تصمیم گیری روز به روز برای زمینی ها باید کامپیوتری در زمین می داشتند. ما، باید مغزی می ساختند. اما جنها فقط مثل امرعت المسرسلعی ها نیستند که دستور العمل رمز شده بفرستند. خودشان دستور العمل هستند. دلیل اینکه چرا نمیتوانند، توانند؟ یقینا مثل عروسک گردان ها بند ما رو بکشند باز همون وقفه زمانی است. کار جنها تأثیرگذشتن گذاشتن در ترکیب پروتین هاست. این کاری کند ولی پر قدرت است برای دستکاری در کار دنیا ماها باید با صبر و حوصله بندهای پروتئینها ها را کشید تا نطفه جنینی ساخته شود از آن سو اصل مطلب در مورد رفتار سرعت آن است مبنای زمانی آن ماه نیست بلکه ثانیه و کسرهای ثانیه است چیزی در دنیا اتفاق می جغدین آگان در هوا ظاهر می شود خشخشی در الفزار خبر از تعمه می دهد و در هزار ثانیه دستگاه عصبی به کار میافتد. افتد ماهیچه ها می جهند و چیزی زندگی خود را از دست می دهد یا نمی دهد جن چنین زمانی برای واکنش ندارد مانند امرأت المسلسل ای ها فقط از قبل تلاش خود را می کند و یک کامپیوتر اجرایی سریع برای خودش می سازد و آن را با قواعد و توصیح هایی برنامه ریزی می کند که بتواند از پس اتفاقات و حوادث احتمالی براید اما اتفاقات زندگی مثل داهای بازی در شطرنج خیلی بیشتر از آن است که بشود تمامشان را پیشبینی کرد مثل برنامه نویس شدرنج، جنها باید آموزش دستورات به ماشین بقایشان را نه به بجوز بلکه به صورت ارائه راهکارها و فوتوفنهای کلی زندگی انجام دهند. همانطور که جی زد یانگ می گوید، عملی که جنها باید انجام دهند شبیه پیشگویی است. وقتی ماشین بقای جنینی در حال ساخته شدن است، خطرها و مسائل آن هنوز ناپیدا و در آینده نه چه کسی می داند کدام گوشت خار، پشت فلان بوته کمین کرده یا کدام تعمه بادپایی مانند تیر با حرکات مارپیچ، از تیر رس او جان به در می برد. نه هیچ انسان پیشگو و نه هیچ جنی نمی داند. اما بعضی پیش بینی های کلی ممکن است. ژن خرس قطبی میتواند با آرامش پیشگویی کند که دنیای آینده ماشین‌های بقای هنوز متولد نشده‌شان سرد است. از نظر آنها این پیشگویی به حساب نمی‌آید. اصلاً ژن‌ها فکر نمی‌کنند. فقط یک پالتو پشمالو درست می‌کنند چون در بدن‌های قبلی همیشه این کار را انجام دادند و به همین دلیل است که اکنون در خزانه ژنی وجود دارند. همچنین پیش‌گویی می‌کنند که قرار است زمین پوشیده از برف باشد و جنبه عملی این پیشگویی این می شود که کت را به رنگ سفید درست کنند که با محیط هم رنگ باشد. اگر هوای قطب آنقدر سریع تغییر کند که بچه خرس خودش را در یک بیابان گرم ببیند، پیشبینی جنها غلط از آب درآمده است و باید مکافاتش را خودشان پستهند. بچه خرس و جنهای درونش با او می میرن. در یک دنیای پیچیده پیشگویی کار نامعلومی است. هر تصمیمی که یک ماشین بقا می گیرد مثل یک قمار است و این وظیفه جنهاست که پیشاپیش مغز را طوری برنامریزی کنند که در تصمیمی که می‌گیرند روی هم رفته برایشان به صرفه باشد. سرمایه در گردش کارخانه تکامل زنده است. دقیقا بقای جنهاست. اما بقای افراد از بسیاری نظرها چیزی تقریبا نزدیک به آن است. اگر حیوانی برای نوشیدن سر چاله آب برود، احتمال این را که غذای حیوان شکارگری شود که در کنار برکه آب برای یافتن طعمه کمین میکند زیاد است. اگر سر چاله آب نرود، ممکن است از تشنگی حلاک شود. در هر انتخاب خطری وجود دارد و باید تصمیمی بگیرد که احتمال بیشتر زنده ماندن جنهایش افزایش یابد. شاید بهترین سیاستی باشد که حدالامکان نوشیدن آب را عقب بیاندازد. بعد برود به یک دل سیر آب بنوشد و تا مدتی راحت باشد. به این ترتیب تعداد دفعاتی را که باید نزدیک برکه آب شود کم می کند ولی در هر صورت باید مدت زمانی طولانی را با سری فرو افتاده در حال نوشیدن بگذروند. شاید بهترین باشد که زود به زود ولی مقدار کمی آب بخورد. یک قلوب را فرو دهد و جلو برکه دور شود. اینکه کدام کدام بهتری است بستگی به عوامل پیچیده مختلفی دارد. که یکی از آنها شیوه شکار آن جانور است که از نظر خود آن جانور حد کارآمدی کارآمدی را پیدا کرده است باید نوعی سنجش احتمال صورت بگیرد البته ما نباید این تصور را داشته باشیم که حیوانات آگاهانه این محاسبات را انجام میدهند آنچه آنجا باید قبول کنیم آن حیواناتی احتمال زنده ماندنشان بیشتر است که جنهاشان مغز را طوری ساختند که بیشتر در این قمارها برنده می شود و بنابراین همان جنها را بیشتر منتشر می کنند. با قمار می شود قیاس را کمی بیشتر بست داد. یک قمارباز به سه کمیت اصلی می اندیشد. خطر، احتمال و پاداش. اگر پاداش خیلی زیاد باشد، قمارباز برای خطر بزرگ آماده می شود. قماربازی که همه داراییش را در یک قمار به میان می آورد آمده از تا قنیمت زیادی کسب کند. همچنین خود را برای یک باخت بزرگ آماده کرده است. اما روی هم رفته قمارباز اهل خطر کردن از آنهایی که با احتیاط پیش می روند نه بهتر و نه بدترند. می شود آنها را با کسانی که در بازار بور زیان می کنند و آنانی که احتیاط کارند مقایسه کرد. از بعضی جهات. برای مقایسه بازار بورس از کازینو بهتر است زیرا کازینوها ها آمدن به نفع خود در بازی دست میبرند. یعنی دقیقا در مجموع قماربازهای اهل ریسک خیلی ندارتر از قماربازهای های احتیاطکار و احتیاطکارها ندارتر از آنهایی هستند که اصلا بازی نمیکنند. ولی دلیل این امر به بحث ما مربوط نمی شود گذشته از این کار قمار پرخطر و قمار کمخطر هر دو منطقی به نظر می رسد. آیا حیوانات قمارباز هم داریم که بعضی بیشتر خطر کنند و بعضی کارتر باشند در فصل نهم خواهیم دید که می‌شود نرها را به صورت قماربازان اهل خطر و ماده‌ها را سرمایه‌گذاران با احتیاط مجسم کرد مخصوصاً در گونه های چند همسری که در آنها نرها برای دست یافتن به جفت با هم در رقابتند. طبیعت شناسهایی که این کتاب را می‌خوانند، شاید بتوانند گونه هایی را در نظر آورند که بشود گونه های خطر پذیر قلم دادشان کرد و در مقابل آنها گونه های کار وجود داشته باشند. اکنون به این موضوع کلی بر گردم که چگونه جنها پیش بینی می کنند.